بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین و آله و صحبه اجمعین اما بعد یعزه همین درس از درس های سوره یوسف در آیه 24 الله یوسف را تبرعه میکنه از اینکه میلی و رقبتی به اون زن که او را به بفاحشه دعوت میکرد از خودش نشون بده اللهم شنين يراد ميكون از عنايتش نسبت بيوسف عليه السلام إن شنين أوراز هر نوبدي ما دور ودور كاردين دور صختين زيرا وبندين مخلص ما بود وياي بي سبحانجون فرمودي الله جل شأنه وستبقى الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب الین این زن داهیه بود این زن زیرک بود هوشیار بود یوسف که میدوه برای فرار از دست این زن که او را اغوا و اقرا کرده و به گمراهی او را داره دعوت میده یوسف که میدوه به طرف در برای فرار اون زن هم میده پش سرش واس تبقا یعنی دو نفری هر دوتا مسابقه دادن هر دوتا مسابقه است ولی یکی مسابقه شرافتمندانه یکی مسابقه دیگر قبیحانه و زشت یکی به قصد بد و فاحشه یکی به قصد نجات و فرار به سوی الله آیا با همدیگه مساویه آیا مثل همه نه والله این فرار به سوی الله میکنه از بعصیت و گناه داره فرار میکنه ولی این دیگری به سوی گناه داره میده فعل یکیه فعل یکیه هر دوتا دارن فرار میکنه هر دوتا دارن میدوند مسابقه دارن میدن ولیکن فرار یوسف شراف هفتمندانه هست فرار یوسف نیت فرار به سوی الله نجاته به نجات خود میشه شتافت که انسان باید یاد بگیره درس عبرته بشه به سوی نجات خودتون مسئله دوم این که گناه فرار میخواد، گناه فرار می خواد. که ازش فرار رو بکنی قصه کبن مالک من بارها گفتم و مرار من الربيع و هلال ست از اصحاب یاران رسول الله صلی الله عليه وسلم که رسول الله صلی قبل از اینکه وفاد بکنه قصد و عظیمت کردن که برن به تبوک اصحاب همه آماده بودن برای جهاد این ستن از یاران از اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وقتی که دیدن که رسول الله جمع زیاد و غفیری از اصحاب یاران رضی الله عنهم اجمعین باج هستن. گفتن که دیگه لازم به ما نیست که ما دیگه بریم الان وقت خرما و گرماست رسول الله هم صلی الله علیه و به تبوک میرسه ازشون یاد میکنه فلانی کجاست کعب کجاست رسول الله صلی الله علیه و وقتی که برمیگرده به مدینه میاد مسجد منافقین این تک تک میان حسقاهی میکنه رسول میگه باشه عذرتون قبول میدونست که اینا منافقه ولی کعب ایمانش تقوایش اجازه نداد اومد زانو به رسول الله صلی الله علیه و گفت که یا رسول الله ما عذرین صدق اخلاص گفت که رسول الله رسول خدا مدونی من شاعرم خودش هم میگه میگه من شاعر بودم میتونستم از حق خودم دفاع بکنم بهونه ای بتلاشم دلیلی بیارم ولی که گفتم خب با دل خودش میگه اگر از بنده یا الله فرار بکنم از الله کجا فرار بکنم راه فراری از الله نیست اینجا باید به سوی الله فرار بکنه باید توبه بکنه گناهی مرتکب شده معصیتی انجام داده این یک فرار به سوی الله با توبه برمیگرده به خونه و منزل منافقی میان بهش میگن که ما رفتیم از خواهی کردیم عذرمون پذیرفته شد تو هم عذر برای خودت بتل‌و دنبال عذری باش بیا رسول ازت قبول میکنه علیه الصلاه و یک نفر دو نفر سه نفر گاهی تکرار اصرار آدمو سست میکنه دیگه در شک میفته بله شاید حق با آنها باشه یه تردیدی دل سردی در من اومد یک دفعه بر سرک زبانم جاری شد آیا کسی هم مثل من بود که عذنه آوردن بله دو نفر حلال و مراره رضی الله عنهما یگه اونجا بود که دلم محکم شد. ایستادگی کردم گفتم پس الحمدلله الگوی نیکی دارم. اونا اصحاب بعد بودن. خب اینجا الله به دادش میرسه و این قضیه را بر سر زبانش میاره. منافقین از یه طرفی داشتن اورا سس میکردن. رسول الله هم دستور داده بود کسی با اونها صحبت نکنه، حجرشون بکنن وضعیت سختی بود. و على ثلاثه الذین خلف حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم الله در از حال روزشون در اون حجر که واقع شده بودن یاد میکنه اون موقعی که رسول در داده بود علیه الصلاه و السلام کسی با آنها صحبت نکنه حجرشون بکنن کسی حق داد و ستد و تعامل با اینا نداره صحبت ممنوع الله در یاد میکنه میگه در اون واقعه اینها نهایت دلتنگی را داشتن زمین و دنیا بر اونها تنگ شده بود در نهایت اوج دلتنگی که اینها به سر میوردن. از یه طرف منافقینم که داشتند اینها رو وسوسه میکردن وسوسه دیگر میاد پادشاه قسان نامه مینویسه بیا که محمد تو را نمیخواد ما تو را میخواییم خونه منزل زن مال هرچی بخوای بهت میدین اقراعات مشوقات باجها ولی خب اینجا ایمان میخواد نجات میخواد فرار را به سوی الله میخواد در مقابل خصوصا اون چیزی که تو را دعوت میده به سوی منکر میگه نامه رو گرفتم آتشی بود اونجا تو آتشی انداختم که دیگه به خودمون ریخته اون نامه را هم نبینه جلوه به نباشه این ایمان واقعیه در مقابل یک منکر یک چیزی که تو را دعوت میده به سوی فاحشه هی تلک بهت میگه همچون این زن حسبش کن برنامه از تو موبایلت تلویزیون کاناله هر چیزی که در فساد، در شهوت، در منکر برای تو باز میکنه فرار بکن از دست اون به الله و پناه ببر همچون یوسف که گفت معاذ الله پناه میبرم به الله این روش نگهداری از ایمان را الله به یاد میده چطور ایمان خودمون نگه داریم حفظش بکنیم این از فرار یوسف علیه السلام و قدد قمیصه من دوبر قد در لغت عربی دقیقا کلمات عربی قد پاره شدن از بالاست قد پاره شدن از بغل یا عمودی و افقی داریم وقتی که از بالا پاره بشه بهش میگن قد پاره شد کمیسش را زلیخا چنانچه الا حتی اسم زلیخا نیومده نه نا در قرآن نه در سنت ولی خود در تورات اومده کمیسی یوسف را پاره میکنه من دوبار از پشت از جلو نه از پشت پاره میکنه چون داره میدوه فرار بکنه یوسف و ألفیا سیده هلا داد الباب و ألفیا ألفیا در وقتی که در رو که میکنه فرار بکنه کنن در و کی میبینن سید انزان آقای انزان نگفت آقای یوسف چون آقای یوسف نبود چون یوسف برده نبود آزاد بود بعدم یک وجه ادبی داره اینجا اخلاقی داره و اونم مکانت شوهر نزد زن الله این یاد میکنه هر چی باشه مرد آقای رجال و قوامون علی النساء آقای خونه هست راعی خونه هست سید خونه هست امرو نهی میکنه. این وزیفه شرعی هست جایگاه شرعی هست که برای مرد الله خایل شده و به این مکانت رسول الله صلی الله علیه وسلم زد میکنه که شما ازش سوء استفاده نکنید همونطور که در حجۃ الوداع توصیه میکنه ای مردم شما سیدی در خونه همه هم میدونن مرد بخواد طلاق بده کسی جلوش نمیگیره مرد بخواد ظلم بکنه کتک بزنه کسی نمیتونه جلوش بگیره باطر همین توصیه رسول الله صلی الله علیه به چیه که از این پست و مقام سوء استفاده نکنید اتق الله في النساء فانهن عوان بين ايديكم زن اسیر از دست شما تقوای الله در زنا داشته باشید زن اسیره زن مظلومه بیرونش بکنی از خونه جایی نداره نه پدر قبولش میکنه نه برادر قبولش میکنه جاش نمیشه جز خونه شوهر تخوای الله داشته باشید در زنها و زنم باید این قضیه رو درک بکنه که مرد سیدش آقاشه متقابله مرد اشتواه میکنه برای حفظ خونت این سیدی رو حفظ کن رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون زن زنانه بهش هیچچینی یاد میکنه میگن اون زن که الله ازش راضی باشه مؤمن متقیه اگرم شوهرش اشتباه کرده باشه قبل از اینکه شوهرش بخوابه به خاطر شوهرش دلتنگ نخوابه دست به دست شوهرش میذاره میگه من چشممو نمیذارم تا اینکه تو بخوابی و از من راضی باشی هرچند که شوهرش اشتباه کرده ولی او استلبی میکنه اون زن این زن داره این زن متقی حالا با یک حرف زدن یک گذشت کردن از اون زن چه کم میشه حرف زبانه مگه گفتن کوهی بکنه جایی بر برماها یک سخن گفتن سنگینه هم از ما کم نمیشه چی کم میشه از اون زن برای استقرار اون خونه اون منزل حالا اون مرد حالا اشتباه کرده با اون عسوانیت بخواد بخوابه حسین مردها از لحاظ جسمی ضعیف نسبت به زنا دلخوریشون نمیدونم دلتنگیشون باطل همین شما میبینید بیشتر سکته ها و بیشتر عروق گرفتگی از در مردا پیش میاد غم و غصهشون بیشتره بخاطره زحمتی که در بیرون و هم مغمی که در بیرون دارن و داد و ستدی که دارن این طبیعیه خب اون مرد خسته و کوفته هم هست بخواد با اون دلتنگی بخوابش ها سکته بزنه تو اون خواب برای حفظ منزل، برای حفظ اون شوهر اون زن باید یک پا جلو بذاره اینجا این ادبیات زندگی که الله و رسولش علی علیه الصلاة و السلام بهمون یاد میدن ادبیات زندگی الف یا سیدها حالت باب باید یاد بگیره اون زن بدونه شوهر احترام داره تو بخوای شوهر رو تحقیر بکنی رو به کسی دیگه میاره چرا رسول الله صلی الله علیه و میفرماین اگر زنی روی بگردانه از شوهرش فرشتگان تا صبح لعنتش میکنن چون این روی گردانیه اون زن شات منجر بشه که اون مرد در فحشا رو به گناه بیاره بس حفظ و استقرار خونه خیلی مهمه حفظ استقرار خونه پیش نمیاد جز با اینکه سیدی مرد آقایی مرد در منزل حفظ بشه احترام و توقیرش حفظ بشه احترام ها باید حفظ بشه وقتی که زن همسر احترام شوهر رو نگه داشت بچه ها یاد میگیرن وقتی که زن همسر میاد بددهنی میکنه بدگویی میکنه میاد به قول خودمون زبان میکشه رو شوهر بعد چی یاد میگیره های ما کپی برداری میکنن عکس میگیرن از اون صحنه ها ما رو الگو میبینن اون مادرشو الگو میبینه همون تعاملی که اون زن داره همون بچه هم همون تعامل رو میگیره و میاد همون برخوردو میکنه با شوهر بس این دیگه زندگی نمیمونه اون مرد چی میخواد چه زندگی داشته باشه چه دلخوشی داشته باشه زن از یه طرف زبانی میکشه او، بچه از یه طرفی کجا بخوابه کجا آرامششو بیا به او پیدا بکنه کجا بره خونه پدر مادر یا تو مسجد بخوابه استقرار خیلی مهمه آرامش خیلی مهمه هدف از ازدواج ایجاد استقرار آرامش سکونته هو الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها زن برای سکونت و آرامشه برای راحتی انسانه نه برای شکنجه آزار اذیت تحقیر اهانت قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء قالت زليخا گفت گفتیم از زیرکی و هوشیاری و سرعت جواب و پاسخ آماده کرده قبل از اینکه جواب پاسخ ازش بخوام قدرته توان فکری و ذهنی این زن همین که شوهرش رو میبینه فورا مستقیما به شوهرش میگه جزای اون کسی که قصد بد و نیت بدی به همسرت داشته باشه چیه؟ فورا اومد یوسف را متهم کرد انگار که هیچ کاری نکرده این کار بیگناهه عملا دوزایی طوری هست تو وسط بازار دوزی میکنن بعد داد میدن فلانی دوزا بگیرید بگیرید خوش دوزی کرده بعد این زن در عبارتش دقیقه گفت ما او من اراده به اهل کسو سزای کسی که قصد بدی نگفت فعل بدی با همسرت داشته گفت قصد فعل بدی داشته چون اگر میگفت فعل بدی با زندت انجام داده با همسرت انجام داده فورا شاد اون مرد میگفت بی چیکار کردی بس تو هم راضی بودی حد من. نگفت فعل بدی انجام داده یوسف نگفت قصد و نیت بدی داشته نسبت به من قصد و نیت بدی داشته چون قصد در دلش که دیگر در عمل ثابت نمیشه در دلش بعد یک مسئله بازم دیگر یک مسئله اعتقادی که دعایی بین ما هست و مخالفینی مون در اعتقاد البته در مسئله آل بیت که آل بیت کیان فرمودی الله جل شان انما يريد الله ليذهب عنكم و اهل البيت این آیه در شانی کیه؟ آیه در شانه علی و فاطمه و حسن و حسین رضی الله عنهم اجمعین يا درشن امهات المؤمنين انما يريد ليذهب عنكم الرجس اللهم خاطر پاک بکنه اثر گناهی اهل البيت این اهل بیت کیان نزاهه سنت امهات المؤمنين چرا بگن قرآن را باید با قرآن تفسیر بکنیم الله اینجا جل شانه الزبان این زن یاد میکنه که این زن اهل اون مرده اهل و عیال خودمون هم میگیم اهل و عیال اهل انسان زن انسانه و عیال بچه بچه‌امونن ما از سزای اون کسی که به اهل تو، الا اهل کیه؟ زن یا فرزند؟ زنه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اهل بيت کیه؟ زنونشن یا بچه‌هاش زنانش واضحه؟ دقیق؟ ما قرآن رو با قرآن تفسیر میکنیم قرآن لغت عربی نازل شده و خیلی هم واضح، صریح. اینجا یوسف میگه قص بدی داشته. بعدم عقوبتاً براش مشخص میکنه یعنی زنه میدونه که حرفش وزداره داره زنا حرفاشو پیش شوهرش وز داره بچه یه چیزی میخواد وره بیاد به مادر میگه مادر به بابا بگو میدونه اینجا این زن که حرفش وز داره پیش شوهر قبل از اینکه فکر بزنم شوهرش در امر واقع شده قرار میده برای که صحت خودش رابری بری بسازه دامن خودشو پاک بکنه از هر نوع تهمتی هات الان توبرو تو زمین قسمش بندازه الان بحث یوسف و زلیخاست الان خونش داره از هم میپاشه اگر او نیت بدی داشته باشه دیگه باید یا کشته بشه یا زندانی بشه هر نوع عقوبتی شاید بر سر زلیخا بیاد الان دنبال راه فراره اول اومد تهمت زد به یوسف بعد اومد عقوبتا مشخص کرد برای یوسف این که دیگه دنبال قاضی نباشه اون عزیز مصر دنبال قاضی نباشه دنبال اینکه مثلا کسی حکم بکنه قضاوت بکنه نباشه دادگاهی رو را خودش راه انداخت اون زن گفتم هم چیه اینکه کسی کسیگر قصبدی به همسرت داره یا زندان بشه و یا تنبیه بشه عذاب و علیم شکنجه بشه حالا با شلاقی با کتکی با هر نوع شکنجهی ای نگفت کشته بشه چون یوسفو دوست داره ولی دوستی شهوت محبت محبت دروغی نبود محبت راستی نبود چون اگر اون رو دوست داشت واقعا محبتش مثلا حقیقی بود نمیگفت که باید زندان بشه نمیگفت باید شکنجه بشه این مشخصه که اینجا زن طمع و رغبتی بر فحشا داره از یوسف فقط میخواد ازش سوء استفاده بکنه بهره ببره محبت نیست این شهوته به خاطر همین راضیه که یوسف به زندان بیفته ولی خب راضی نیست که بیمیرهم. هنوز هنوزم تمع داره امید داره شاید بازم بتونه يوسف رو بترافه قدش جذب بكره به خاطر همین یک ترفند و یک مکر نیرنگی حیله‌ی دیگری به کار قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين قال هي راودتني یوسف ماذا خوش دفاع کرد وقتی که انسان در موزه تهمت واقع میشه در حین دادگاهی باید از خودش دفاع بکنه وقتی که مظلومه سال مظلوم از خودش دفاع میکنه اینجا هم یوسف از خودش دفاع میکنه تهمت دارن بهش میزنن به قول خود ما روز روشن دارن بهش دروغ میبافن و میبندن خب یوسف پورم اومد جواب داد گفت که این اومد من رو کرد اومد به طرف من که من در فحشامون کرد این قصه بد به من داشت من که با میل رقبت خودم اینجا نیومدم این اومد درا رو بس این اومد لباسش نگاه بکن تابلوه خودشو مهیا کرده این زن برای من هی راودتنی مراوغه کرده با این ریخت نگاه بکنید کلی آرایش و زینت دلات بر چی میده من اومدم به طرفش یا اون اومده به طرف من استناد و استدلال به چی میکنه قرینه یوسف اومد از خوش دفاع کرد با دلیل مظهر زلیخا تابلوه در مراوغه کردن و جذب کردن من به طرف خودش بس دفاع کرد با دلیل خب الان زلیخا ادعا داره ما الان قاضی باشیم خودمون در مقام قضاوت قرار بدیم زلیخا دعا داره یوسف قصد بدی داشته یوسف میگه هیئت این زن دلات برچی میده قرینه هست بر اینکه این زن قصد بدی بر من داشته یوسف برای خودش دلیلی داره ولی اون زن دلیلی نداره یک قسمت ادله و براهیم خب الان مونده شوهر چگونه قضاوت بکنه گواهی میخواه گواه هم در کفه یکی هم یوسف که کسی نداره دوستی نداره رفیقی نداره هیچ کسی نداره غریبه اونجا گواه هست که گواه هستم از قوم و خیشه اون زن و شهد شاهدون من اهلها حکمی قاضی. اومد گواه داد، از اهل اون زن، اهل ها، اهل کی؟ اون ها، زمیر برمیگده به اون زن اگر پیرهانش، پیرال یوسف، اگر از جلو پاره شده، زن راست میگه و هو من الكاظمی، و یوسف درو میگه، یوسف در اون دعاش دروغ میگه اگر از جلو پیرهانش پاره شده و اینکان قمیسو قد من دو برن، اگر از؟ عقب پیرانش پاره شده خب زنه دوید پشت سرش داره پیرانش رو میکشه اون پیرانه از پشت پاره شده فکذبت این زنه داره دروغ میگه و هو من الصادقین و یوسف راست میگه حالا چند تا مسئله هست یک مسئله اول این قمیس و ماجره های یوسف با اون قمیس به عنوان یک مدرک چند جا رای میشه اونجا برادران یوسف اومدن خون گوسفند رو ریختن اومدن نزد پدر گفتن گرگ برادرمو خورده یعقوب چی گفت چه گرگ مهربانی پیران پاره نشده چطور قرینه پاره نشدن قرینه پاره نشدن شد گواهی بر اینکه برادران یوسف دروغ میگن قرینه دلیل اینجا قرینه پاره شدن پیراهن اونجا پاره نشده بود اینجا پیراهن پاره شده قرینه پاره شدن پیراهن از عقب دلایل برچی شد که یوسف راست میگه پیراهن داره به داد یوسف میرسه الله سبب قرار داده الله که بخواد تو را نجات بده این همون پیراهنه بنوانی عنوان یک گواه ما نمونه هاش در شرع زیاد داریم قرینه که دلالت میده بر جرم بر, ج... بر جنایت شخص ندیدیم که مشروب نوشیده من به من قاضی ولی گواه دارم دو نفر که سفراق کرده و اون چیزی که سفراق کرده مشروب بوده یا بوی دهنش بوی مشروبه شلاق ندیده کسی که مشروب نوشیده بلکه پس دادن مشروب دلالت بر چیه؟ اینکه این شخص مس کرده با مشروب. قرینه هست. قرینه دلالت میده بر جرم و جنایت. شخصی میگه مال شخصی رو، موتور شخصی رو دزدیده توی منزلش پیدا میکنی میگه نه من که ندزدیدم. پس کی دزدیده؟ موتور خودش بلند شده مال تو خونه. قرینه دلالت میده بر جنایت. با قرینه ها هر کسی ادعا میکنه باید قرینه دلیل بیاره، برهان بیاره. یا دو تا شاهد یا چی؟ گواه و مدرک. نداشته باشی تو دروغگویی. نه میتونه ادعا بکنه بر علیه شخصی بدونی که یا که دوتا شاهد داشته باشی. و یا اینکه چی مدرکی عینی داشته باشی دلیل و مدرک برحال مثل اینجا یوسف دلیل و مدرک چی میاره؟ هيت اون زن و اینجا اون قاضی میاد قضاوت میکنه میگه یک اگر از پشت پاره شده اون زنه هست که پشت سرش دویده رو کشیده که به طرف خودش بکشه زن مقصره یوسف چیکار است؟ یوسف داره میدونه که فرار بکنه کسی که فرار میکنه از پشت پیرهانش کشیده میشه میگه میتونه قص بدی داشته باشه قصش خوب بوده داره فرار میکنه نمیتونه قصش بد باشه اون داره پیرهانش از عقب میکشه. و پیرهان کسی که پاره شده یوسف و این چیزین چیزی قرائنم ما داریم در شریعت. اینو من دارم میگم نمونهاش به خاطری که من و شما به عنوان یک پدر در خونه مسئولیم در مقابل فرزندمون، همسرمون دعواها میشه و باید بدونیم که چگونه قضاوت بکنیم بین اون اختلافات خانوادگی بین برادر و خواهر، بین مادر و پدر و غیر ما بتونیم درست قضاوت بکنیم. نمونه که رسول صلی الله علیه و آله بهمون از قضیه دو تا زن بود در زمان پیامبر سلیمان و داود علیه مسلم دو تا زنه کی بزرگتره کی کوچکتر میان ادعا میکنن که این بچه مال منه این میگه مال من اونم میگه مال من داوود میگه خب این زن سنی از گذشته مال این زن بزرگتر است قضاوت بر حسب ظاهر میکنه بر حسب سن و سال اون زن سلیمان میاد میگه نه علیه السلام میگه نه چاقو بیارید من قضاوت میکنم چاخو میخوای چه کار بگونی چاخو بیارید بچه رو هم بیارید بچه آوردن گفت چاقو باید بچه رو بالم بکشم نه مال این نه مال این زنی که کوچکتر بود گفت که نه بذارید بچه رو نکشید. سلیمان گفت این بچه مال این زن است بر چه دلیلی اینجا استناد کرد سلیمان علیه السلام؟ بر مهر محبت مادری. اینجا چون این مادرشه نخواست این بچه کشته بشه. گفت که بذار مال اون زنه باشه ولی کشته نشه. این قرائن قرائن بر... براءت اون شخص بر اون اتهامی که زده شده اینها از درس از این مسائلی که الله در یاد میکنه چند تا کلمه بیشتر نیست ولی خیلی از درس ها هست که انسان باید ازش یاد بگیره سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك صلى الله علیه محمد و علی محمد